ای خدا این شامه گجران ای سب قدم کم می شوبد ای خدا این شامه گجران ای سب قدم می شوبد قلب جهان خالیز غم کم می شوبد قلب رنجور جهان خالیز غم کم می شوبد فرشوده عالم از جور خال دم خال دم و ظلمت یانو جفا خور شده ز زی جور و ظلم جفا این جهال خالی ز بیداد و ستم کیم. جهان خالی و سدم کیمی خدا، این جان خالی ز بی‌داد دوستم که می شباد ای خدا این شام لی صبح دم کیمی که می چوب قلب رنجور جهان خالی ز غم که می شباد قلب رنجور جهان خالی ز غم که می ای خدا این گرجهای ظالم دل خود ای خدا این گرگ‌ها ی زالم درند خو. عسر ما شر بود و کم کای می شود عسر ما شرشن شان و کم کیمی می شود ای اي خدا این شام هجران سب می شود قلب جهان خالی غم کیمی می شود قلب رنجوره جهان خالیز غم کای می شود بار الها از ها ی ایجا بته دوا اے دعا مردی, مردی از نسل محمد غدالم کی میں شبا مردی از نسل محمد غدالم کی میں شبا کہ ای خدا انشاء مہجرن سب ہدم کی میں شبا قلب رنجور جہان خالی از غم کی میں شبا قلب رنجور جہان خالی از غم کی میں مردی جون تمام در این شب تاریک غم راد مردی چون تمام در این شب تاریک غم شمع آرای بو مسیحه ی ازم که می شود شام آرای بو مسیحه ی ازم ای می شود که خدا این شام هجران صبح هضم که می شود قلب رنجور جهان خالی غم که می می قلب رنجور جهان خالی زغم کیمی شود چون وفاداران آمد بار دیگر یک نفر چون وفاداران آمد بار دیگر یک نفر غد علم کیممی کند شاه همم کیم می شود غد علم کیممیگوند شاه همم کیم می شود ایی خدا اینشاامه جران صبح هدم کیم می شود قلب بررن دوره جهان خالی ز غم می شود قلب بررن دور جهان خالی زبان کیم می شود آنکه شد سرزی تشم میبینای یا نی خدا آنکش سر دی یتش میبینای یا خدا مرهم زخم دل مانیز هم کمی کم شود مرهم زخم دل مانیز هم کمی کم شود ای خدا انشام جرانت سوختن کی می شود قلب رنجره جهان خالیز غم کی می شود قلب رنجور جهان خالی, خالی از غم کی می شود اخیرا ای رب بی ضعیفان خدای میربان اخیرا ای رب بی خدای میربان قلب هر مظلوم خالی از قلم کی می شود قلب هر مظلوم خالی علم قلم کی می شود ای خدا انسان هجران خ کی شود غ جهان خالی ز غم کیم می شود غ بررن دور جهان خالی ز غم کیم می شود ای خدا این شام دیران صبح خدن کی شود غ جهان خالی ز غم ک می شود غ بررن دوره جهان خالی ز غم کی شود خالی ز غم کیمی شباد خالی زغم کیمی شباد.